بشه البته من نمیخواستم واقعا این مسائل رو مطرح بکنیم و نباید هم مطرح بکنیم ولیکن چیکار کنیم مجبوریم ما میگیم به صراحت به مسئولین مس... به شما جبران میگم اولی که مسئولین ست خبر نداشتن واقعا اگر هم خبر داشتن اونا میگیم که مسئله هست ایران مسئله مهمی است ما در مقابل آمریکا اسرائیل همه به خاطر دفاع از مسئله حسته ایران کنار برادرانشیه بلکه در خط مقدم میستیم ولیکن اینو بدانن که مسئله حسته ای علا رغم اهمیت او به خدا قسم اعتقادات اهل سنت به مراتب از مسئله حسته ایران مهمتر و افزرتر و بزرگتره و اینو بدونید که اگر چه ما جوون موتاد داریم جوونی بی بندبار داریم جوان شرابخار داریم، جوان روزخار داریم، ولی وقتی که پای عقیده و آرمان و پای احانت به صحابه بیاد همون جوان ماتاد و بندبار ما هم خودش را مسلح خواهد کرد و فدای عبوبکر کلام اسمم خواهد شد عقیده مگر مسئله کوچکی است که بیاد هر عراجیف بافی هر احمق و ملعون و مرتدی مثل تیجانی بیاد احانت کنه کرخوندید آقای تیجانی و مطمئنم اگر این حرف آ و این عمل کرد شبکه جاهلان به گوش رهبر محظم انقلاب برسه قطعا برخورد خواهد کرد که امروز جهان اسلام نیاز به وحدت داره آمریکا از اون رفشن لیک میکنه کربرایی که صد درس از شیعه هست بخواه کشیده فلوجهی که صد درس از سنی هم هست بخواه کشیده و به خون کشیده است شیعه و سنی مطرح نیست و اسلام مطرحه جاداشت میام از شبکه ملی که مخصوص ملت ایرانه های ملی رو مطرح میکن دین رو مطرح می‌کرد اسلام رو از اسلام دفاع می‌کرد نه مذهب با کاش فقط از مذهب شیعه دفاع می‌کرد مذهب اهل سنت رو مورد تنقید و اعتراض و اهانت قرار نمی‌داد همه اهانتی میشه تو تلویزیون اهانتی میشه همه بیدار میشن سر جاشون بلند میشن من خودم این تیجانی رو نمی‌شناختم واقعا فقط شنیدی بودم مولانا دامنی میگفت این تیجانی تو کدوم گور کدوم سوراخی رفته که بیاد من دنبالش بشم ده سال داد زد دامنی من ندهی تو کدوم گوری بود حالا فکر کرد دامنی رفته کسی نیست کس نباشد در سرا آقای موشتی جانی باشد کت خدا اما کور خوندی تیجانی شاگردان دامنی دامنی شاگردان تربیت کرد که الان هم حاضرن اگر واقعا فضای طلبگی و بحث علمی باشه شاگردان دامنی حاضرن بیان در پشت تلویزیون و صدا و سیما راحت با تو بسکنن ببینن اون موقع واقعا مرد ایتان که خواهد بود فسوف ترا ایدن کشف الغبارو افرس تحت رجل ام حمار. مشخص خواهد شد موقع. باقی هر کس تنها به میدان بره قاضی برمیگرده و دلابر و شجا بره اینطور نیست من بالر کن بعد این جنره لفتم دنبال و تیجانی